نگاه کنید ببینید تو خانواده ها عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن چیست دنبال این باشید که با شیوه های گوناگون با قانون با ارز کنم که روش های تبدیقی با روش های گناگون اینها رو برطرف کنید این اساس قضیه است زن در خانه مایه آرامشه مایه آرامش مرد و مایه آرامش فرزندان دختر و پسر اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشه نمی توان این آرامش رو به خانواده بده زنی که مورد تحقیر قرار بگیره مورد اهانت قرار بگیره مورد فشار کار قرار بگیره این نمی نمیتونه کدبانو باشه این نمیتونه مدیر خانواده باشه در حال که زن مدیر خانواده است اینا مسئله، این مسئله اصلی این یکی از اون اصلی ترین مسائلی خب در محیط زندگی ما چه محیط های قدیمی ما چه محیط های جدیدی ما چندون مورد توجه قرار نگرفته است و باید مورد توجه قرار بگیره